هر که شد محرم دل در حرم یار بماند وان که این کار ندانه است در این کار بماند اگر از پرده برون شد دل من عیب مکن شکر ایزد که نه در پرده پندار بماند صوفیان واسطند از گرو میعمه رقت ما بود که در خانه خمار بماند مختسب شیخ شد و فسق خود از یاد ببرد قصه ماست که در هر سر بازار بماند حرمه لعل کزان دست بلورین ستدیم آ به حسرت شد و در چشم بار بماند جز دل من که ازل تا به ابد عاشق ر جاودان کس نشنیدیم که در کار بماند گشت بیمار که چون چشم تو گردد نرگس شیوه تو نشدش فاصل و بیمار بماند از صدای سخن عشق ندیدم خوش تر یادگاری که در این گنبد دام وا بماند داشتم دلقی و صد ای به مرا می پوشید خرگ رهنمه و مطرب شد و زنار بمان بر جمال تو چنان صورت چین حیران شد که حدیثش همه جا در در و دیوار بمان به تماشاگه زلفش دل حافظ روزی شد که باز آید و جاوید گرفتار بمان